سلام به همه شعاری های عزیز من امیرم صدای من رو از تماشاخانه پایتخت روز 25 ده شنبه میشنوید یه جوری دیگه کمر زمستون داره میشکنه امیدوارم این شیر شارتون قشنگ باز باشه تو این زمستونه ایونتی که اینجا هستیم که هفته پیشم روز اولش بود قشنگ مود زمستونی هم داره ست بچهای هستن که اگر الکترونیک باز باشید رو تو تهران زندگی کنید خیلی بعیده اسم جریانشون یا ایونتایی که برگزار می‌کنند و نشینده باشید امیدوارم پاسکس رو تا هفته پیش که دیروز یعنی جمعه منتشر شد با تاخیر چهنده باشید مصالحه بود با ترخون و سیابش امینی و ترخون که پدرام و فرشاد من بچهای بچه های دواره رو یه معرفی بکنم از بینوت که رو اونده شسته شروع میکنم خودش هم سری جدیدش دوی شار شروع میشه آی دی افتی توی ایران کرنت هم باش صحبت کردیم آرش اکبری خب اصل قضیه است اینجا کنارمونه وقتی که من دقیقا اجرای خداوارش شد فرصت داشتم که توی شهریور دوبار ببینم تو فاصله خیلی کوتاه جفتش هم لذت بردم و سروش هم معرفی کنم که در واقع سروش قرهباگی از دوستای قدیمی بچه ست هست و کسی که در واقع خودش مدیو آرتیستیه که از اوایل شکل درواقع اون در واقع حال جریان الکترونیک تجربی تو ایران در واقع میدونسته قضیه رو و در جریان بوده کاملا ازش خواستم که اگه خوبم بده وباصن صحبتی کنیم با هم اگه سوالی داشارش داره اما آراش اکبری خوب خیلی از شما بر کسی که نمیشنسید موزیسیانی که بیشتر سبک اکسپرمنتال امبینت و درون کار میکنند اگر از من بپرسید که تا آلبوم امبینت خیلی, خیلی خیلی خوب از بچه ایران معرفی کنم بهتون یکیش اسمش Vanishing Pointه کار دوزار پوینزد که لیبل فلیمین پاینت دار بود که واقعا لذت بخش بود برام اگر از همینجا بخوام شروع کنم و یه گذاری به این ایونت بزنم حالا سواله که از بچه دیگر میپرسم ولی درسته که سوالش تکراریه ولی خب جوابش تکراری نیست این در واقع اون توجهی که به ریلیزای شما توی میدیا و مثلا کسایی که اون چه تو لیبل چه میدیا خیلی یه جوری مثلا بیشتر توجه تو جلب می کنه و برات مهمه و دوست داری یا این وایبی که از خود مخاطبای حضوری توی ایبنت های مثل ست اینجا می گیری؟ به نظرم هر دو چون خیلی با هم دیگه فرق میکنن کنن میدیا خب گوشی که داره یه گوشه منتق قدرت رو یعنی آنچنان تفریحی یا مثلا برای لذت بردن شاید به موزیک نگاه نکنه یعنی دنبال ایبو یرادا میگرده دنبال نقاط قوت و نقاط ضعف میگرده برای همین خب همیشه نگاه مدیا جالبه این که بدون این حالا نه اینی که خیلی بده یعنی طلس اگر به دنبال این باشی که تعریف و تمجیدشون رو کسب کنی چون خب همیشه لزوماً تعریفشون نسبت به موزیک تو نیست بعضی موقعا میخوان یه سری جریان سازی ها بکنن میخوان یه سری کارایی بکنن که خب تو هم میخوان دوست دارم توی اون جریان سوار بشی و بری ولی در کل نگاهشون جالبه یعنی باید باید, باید به نگاهشون توجه کرد خب آدینسی که موقع که میاد روی یعنی میاد توی لایو تو خب اون در واقع انرژی در لحظه و خیلی زندهی رو به تو میده که میدونی خیلی اصلا خیلی متفاوته با اون چیزی که مثلا یه ریویو میتونه به تو بده یعنی یه انرژی که همون رحظه است یه فلویه که همون لحظه است و بعد هم که از سیجمی های پایین یا آدینس میره دیگه تموم میشه حالا خوب یا بد بعضی مقای سرسی مثل بعضی مقای خیلی خوب میدونی در هر وای بی هست دو تا حس متفاوتن و هر دوشون لازم متوجه حالا فرم، اجدا و شکل جا که حالا آدیو ویژوال هست، حالا آدمامیان توی سالن تاریک. تو چند تا اجرائی که داشتی یه جوری بهترین فیدبکی که از خودت آدینس گرفتی حالا دوستات رو منها کنیم فیدبکی از خودت یعنی کسی که اصلا نمیشناختی اومده بود که مثلا من فلان حسو از لایبت گرفتم فلان فیلینگ گرفتم یعنی بهترین چیز فیدبکی چی بوده مثلا مخاطبی که گرفتی خب متفاوت خب یه سری ها مثلا شاید که زیاد با این سک آشنا نیستن خب براشون جالبه این که چرا مثلا یه تصویر باید انقدر بمونه روی سکرید و هی آرو آرو مرفشه مثلا جذابیتشون برایشون این بود یعنی که این تکراره و جذبشون کرده بود که یه فضای هی هی داره تکرار میشه و خب بعد این آروم آروم تا احساس میکنی که داری یه سری چیزهای جدید توش میبینی یا یه سری چیزهای جدید میشنوی یه سری کامنت هاشون الان اسپسیفیک تر بود اونایی که مثلا دیده هنری هنر تجسمی، دیده هنری تری داشتن. مثلا خب نظراتشون چه می‌گم مثلا راجبه یه فرم توی یه جایی بود، یه رنگی توی یه جایی بود. خودت اگر مثلا تقسیم شد به آرشکبری دیگه میومد اجای خودت نشست. دوست خودت مثلا یه مدل دیگه‌ای تو فرم اجزاج ارائه بکنی که به ایدالت نزدیک تر باشه، چیزی که حالا شاید محدودیتای که حالا یا سالون یا فرم یا مثلا اجزای اونطوری مانع یه سوالو جور دیگه‌ای مطرح کنیم که چقدر در واقع پرفورمنس خود آرتیست توی استیج چقدر اهمیت میده یعنی خب من احساس کردم که بیشتر در واقع چون آدیو ویژوال هست یه جوری تقسیم میشه توجه هم توی موسیقی هم توی در واقع تصویر اما اون ایداله چی بود که فکر می‌کنم مثلا توی پرفورم پرزنت کردن موزیک میتونه فرم ایدال تری داشته بشه؟ ببم خب همیشه که آدم از کاری که می‌کنه در نهایت راضی نیست یعنی اصلاً به نظر من اگر حالا آرتیست موزیسیان به نقطه نقطه‌ای برسه که انقدر از خودش اطمینان داشته باشه که بگه من پرفکت بودم 100 درصد پتانسیلم بوده همونجا باید تموم کنه همه چی رو بذاره تو پرانتز بگم صدایی که می‌شوی ساوند چک اتهابتکار صوت است که تا دقایق دیگه اجازه شروع میشه برای همین یه توفیق اجباری هم حاصلم <تصفح> شد حالا من از می خواهم خب که من یه سوال اول میکرسم که ویژوال ها ریال تایم بود یا پست پراسس یا پری پراسس بود؟ یعنی خود داشتی لایف و اونها کنتا رو خب قطعا که بخشیشو من متوجه شدم یعنی ولی اون در واقع ویژوال پکام پارت سه ووم بود اون شکریه که رنگ آبی داشت و سه تکسچر این بالا کنیم میشد این همینم که این ویژه تا خودت می در لحظه کامیدند یا نپست پست روش هست یا پی پراسیسی ویژوال ها این سری همشون جنراتیب بودن توی کارهای قبلی از ویدئو فوتج استفاده بودن. کرده بودم ولی این سری نه. چون فوکس همو گذاشته بودم روی رنگ و فرمایی که فقط رنگ طولت کنه برای همین جنراتیب بودن ولی خب توی هر ترک کم از 20 کنترل فرق میکند. یه جایی مثلاً پارامتری ازیاب تابید یه جایی نه کمتر بود برای در نمایش آره همشون دلخواهی داره. سیاه کول و این که من فرآیندی رو گذاشتم که آیا کلیان گرایش به این داری که این یه داروا سیناریو بیس باشه یا یه سیگیرو تیک کنه می‌گره که اون حسی که داره دوست داره تب برمزیش بده. داروا بیست هم تسویی بره یا نه. اینو منظوری به تیز نه مخاطبین که حالا اینو چجوری بدینن؟ ببین توی, توی این پرفومنس تو، بازم توی پرفومنسی قبلی سیناریو کلی مهم بود ولی توی این پرفورمنس ترک به ترک برا مهم بود یعنی مهم بود که اون ویژوالی که در لحظه داره برای اون صدا تولید میشه با هم دیگه مش باشن و بیاد تا هم دیگه کمک کنن تا یه میدون یه, یه فضایی رو درست کنن که تو یه حسی اضافه تر از فقط صدا یا حسی اضافه تر, سن تر سن از فقط هست می خوام بونم تاکیدی روی این فانتزاستن داشتنه خودت چشایی دیگه که داشته باشی یا نه صدر باعته صدر باعته این چرا میگم توی این, این, این لایت نه یعنی این اصلا برای مهم نبود بیشتر برای مهم اصلا خیلی ساده بخوام بگم بیشتر برای مهم بود اون که انتخاب میشن اون فرمایی که در, در سر تیرگی و روشنی تصویر داره تولید میشه با فضایی که خود موزیک در اون لحظه داره تولید میکنه با هم دیگه مچ باشم ولی خب سناریو یه ساید به شما تو عوالی شروع کردی با آلیاس عوده او بود اونو می ادامه بیدی یا ریلیزه بعدی که اسمه آراشرکاری هست؟ من فعلا واقعا تصمیمی ندارم برای ادامه دادن. اون چون اونو خیلی کارایی که بیشتر سمت IDM و حالا ترک های بیدارتر و ریتمیک تر بودن. و از اون موقعی که یعنی فعلا من همچین استعالی رو انتخاب نکردم کار نمیکنم کنم به خاطر همین فعلا منو گذاشتم که شاید الان یه روزی یه اتفاقی بیفته و برگردمش ولی فعلا برنامه واقعا من ندارم آشان. خب دو منتظر هیفتر متظر داشت آره داشت. آره فکر میکنم اگر لیبل ها یاری کنن و آلواب را ریلیز کنن آره امسال یه, یه ریلیز حتی دارم بعد معتقابه با کار آره آره میتونم بگم متفاوته حالا شاید در کلیت نه یعنی شاید اونسا المان خیلی خیلی اسپسیفیک مشخصی ند وجود نداشته باشه که بگم الان مثلا این اتفاق تغییر کرده نسبت به ریلیزهای قبلی ولی خب آره چون خدا آدم فرق فرق میکنه همیشه میدونی متقابلا همه چیز فرق میکنه غالبا ریلیز ها فرق داره امیدوارم تون دوباره بعدش مشابه این کنار و همیش بخشت داییم و از مرس و مرسی از شما 11-11 رو به روز دوگوم ست شده و همه یه جوری دیگه یه اشترابست دا دارد از بحت اجرای اترابتکار درمیان نیاز به معرفی نداره سوال همه همه در واقع با یوشها رو دنبال کرده باشید یا با بچه ست آشنا باشید اجرای قبلیشون رو در جریانش بودید و در واقعی از شراختش رو بتنید و با سال رو الکترونیک یعنی ایران هستن ت بر من خیلی جالب بود که چند ماه پیش فیسبوکم باز کردم و که اجرای اتهار ابتکار توی بولر بوده خیلی چون تیپیکال همیشه ذهنیتمون این بودی که ویدیوایی که از بولر روم می‌بینیم دنس و پارتی داره ولی ستی که شما انتخاب کرده بودید و این همه راه دور و تا لندن رفته بودید خیلی ز با ارزشی بود که مجموعه بود از کار بچه ایران اولا که اودینسی نبود یعنی من خودم درخواست کردم نباشه برای یعنی همونجوری که خود گفتیم، دوست نداشتم جب، اون حالت جب، اون چیزی که ما با, با, با روم آشنا هستیم که حالت در واقع مثلا همون کلاب و اینا باشه، اون رو نمیخواستم باشه، رو بخواهی، چون که من چند روز قبلش توی لندن یه اجرا توی یه جایی به اسم کفاوتو داشتم که که اجرای زنده از کار خودم بود و قرار دادی که با آن داشتم من دیگه اجازه نداشتم توی لندن یعنی معمولا اینجوریه که آدم یه ماه قبل از یه اجرا و یه ماه بعد از یه که توی یه شهر و خصوصه هست اجرا دیگه معمولا نمی کنه تو خب من معمولا همیشه خیلی دوست دارم که سین ایران و یعنی آهنگساز موسیقی الکترونیکی ایران همیشه سپورت کنم و حمایت کنم و خب اینم به به خود به چه بهتر از به روم پلتفرم فوق العاده بزرگ و که خیلی خوب بود یعنی هم خودم خیلی راضی بودم هم در واقع استاف روم هم کلا کسایی که بعدا با من در تماس بودم. چه طریقه ایمیل چه طریقه سوشال میدیا سایت مختلف مینا. خیلی خوششون اومد و من فکر کنم باعث شد که خیلی بازم برن به طرف این آهنساز سازای جوان ایرانی و ببینن جریان چیه یا اصلا خیلی برای براشون مجرم قیدی بود که پس تو ایران هم این خبر ها هست و فکر کنم جای خوبیه یکی دوباره از پیدران و عزیز که به اسم پایتیرم کار میکنه تشکر کنم که کارهای ویژوال پشت منو زحمت کشید و کار خیلی قشنگ. یعنی با هم دیگه صحبت کردیم من گفتم تو چه چیزایی میخوام بدی چه تمی باشه و انجام داده ویژوالای خیلی قشنگ. انجام داد، استفاده کرد. همیشه گفتم من به نظر من اکثر همه بچه‌های ست که 100 درصد و خیلی از بچه های دیگه که حالا بیرون از ست هستن به نظر من بچه های ایرانی که فعالان هستن واقعا لول بیناملی هستن. به نظر من از لحاظ کیفیت کاری فوق‌العاده یعنی هیچ مشکلی باید. واقعا من فکر می کنم کسایی که خارج از ایران اروپا و این نوع موسیقی رو دنبال میکنن و شاید به حالت خیلی عام میرن یه جایی بیرون و این چیز رو گوش میکنن لذت می از کارشون من اینکه یه،, یه،, یه چیز خاصی تمام این بچه ها دارن یه، یه، یه، نمیدونم چیه که برای تو آهنگ سازیشونن یه،, یه عمقی هستش که به نظر من خیلی از آهنگ های اروپایی ندارن اتفاققا حدود دو هفته دیگه. ست داره با فسیوال سی تی ایم در آلمان همکاری میکنه که در واقع یه شوکیس سیا وش نیما و سارا که گروه نانتی انتا دارن اونا خواهن اونجا بود و من هم که پروژه جدید ایلکتشو هم که با دو تا ایرانی ایرانی و وستار هست و اونجا پریمیر خواهم کرد و در واقع یه شوکیس ایرانیه امه. و این برنامه ادامه خواهد داشت. حالا ما فعلا سه تو یه جورایی یه نیمچه ست داریم میبریم تو سیتی. هم سیتی سی تیم, سی تیم. بیا تو ایران با ما همکاری بکنه و با فستیوال های خیلی معتبر دیگه هم من الان در ارتباط هستم و قرار این اتفاق بازم بیشتر و بیشتر تو جاهای دیگه, دیگه دنیا دنیا بیفته. یعنی جاهای دیگه اروپا فعلا. حالا یکم برگیدیم به موزیک خودتون و اجرهی که بدیدیم ازتون چیزی که خیلی خیلی جربه تحجیم میکنه تو کلند سه موسیقی شما اینی که نه تنها به شدت شخصی هست و منحصر به فرده یه یجوری من دوست دارم لغبه یجوری آنتیتز موزیک تکنو بهش بدم اینه اگر ما در واقع آستهتیک تکنو رو اصلا بیس استاندارد سازی بذاریم موزیک شما در واقع آنتیتزشه یعنی انقدر در واقع این ورییشنا توش اتفاق میفته انقدر پیش بینی ناپذیر انقدر در لحظه اتفاق میفته که از اون طرف هم توی تجربه اجر زندگی که دارید دوست دارید مخاطب مخاطبی که میان در واقع از این حجم صدا و امضای خودت صد چه چیزی توی ذهنشون باقی بمونه از اون ارتباطی که تو اجر زندگی ببین راستش رو بخوای من اصلا به این چیزا فکر نمی کنم من موسیقی درست می کنم و موسیقی می کنم اول برای خودم تمام این چیزایی که گفتی درسته البته ببینید دقیقا موسیقی من شاید میشه گفت که شاید اینو موسیقی تکنوئه ولی برای من اینو میگم قبلا هم گفتم موسیقی تکنو موسیقی بود که من باش بزرگ شدم متاسفانه موسیقی تکنو شد یه فرمول و من همیشه از فرمول بدم میامم بعد خب الان کاری که من الان دارم میکنم خب من هم خواستم برگردم به ریشه هام و اون انرژی اون در واقع موسیقی تکنو موسیقی نویز موسیقی اینو موسیقیه ای که من باش بزرگ شدم و حفظ کنم ولی ببرمشون جاهای جدید با لایه سازی با پلی ری... کارهای پلی ریتمیکی ساوند های خیلی پیچیده هارمونی... هارمونی های خیلی جالب استفاده کردن کارهای ماکروتونال کردن میگم اه... واقعا من زیاد به این جریان عمیق نگاه نمی کنم یا فکر نمی کنم حالا چه چه احساسی خواهد داشت یا من یه کاری بکنم که یه کسی رو ببرم فلان جا نه من همه این کارا رو دارن واسه بخا بر خودم دیگه کلا فستیوال ستر رو حالا اگه به عنوان فستیوال بخا بگی یعنی چطور می بینید در تهران منحصرن در موزیکسین تهران منظورم یعنی اون اتفاق که بود بیفته میفته یعنی آدما الا آرتيستا بیشتر جذب این جریان میشن یا همراه میشن ولی شاید اون اضافه نمیشن به مزارک هایی که بیرون دایرهن همونجور که بیرون از این فستیوال ممکن باشه. خب منم که این رو چجوری میمی در مقایسه با مثلا جاهای دیگه واقعیتی که ما جدی میگم یعنی صادقانه میگم که ما هدفمون اینه که یعنی حمایت و سپورت کسای دیگه تو ایران یعنی ما استانی نیستش که ما فقط داریم این جریان واسه خودمون ولی خیلی سالی غییر داری خب اون حق با ما داریم که بالاخره به قول معرفون کازی کنترل یعنی اون کنترل کیفیت رو یه, یه چیز چیز سر رو خوشمون میاد یه سر چیزها رو خوشمون نمیاد.